مصل اول سال 2009 فاصله ایستگاه اتوبوس تا خانه 150 قدم می شود اما اگر عجله نداشته باشی و قدم های کوتاهتری برداری تا 180 هم میرسد درست مثل وقت هایی که کفش لژدار پوشیده باشی از کنج خیابان مان که پیچیدم 68 قدم خانه ما نمایان شد خانه که دیوار مشترک با همسایه بغلی داشت، چهار اتاق خوابه و در ردیف خانه‌های سه خوابه و چهار خوابه بود. با دیدن اتومبیل بابا فهمیدم هنوز سر کار نرفته است. پشت سرم خورشید در پس قلعه استورتفولد غروب می‌کرد. سایه‌های سیاهش همچون مومی که در حال آب شدن است، از تپه می‌لغزید و پایین می‌آمد. اگر اوزا اینگونه رقم نمیخورد، تمام خاطراتم را از این محل برایتان تعریف میکردم. در این محل بود که بابا به من یاد داد، بدون چرخ کمکی سوار دو چرخ شدم. خانم داهرتی با آن کلاهگی گج برای من کیک درست کرد. ترینا با چوب به های زنبور لایه پرچین زد و ما جیغ زنان تمام راه بازگشت به قلعه را دویدیم. سه چرخه‌ی توماس سر و ته توی راه افتاده بود. در حیاط را بستم و سه را کشان کشان آوردم و زیر ایوان گذاشتم. در خانه را باز کردم. هورم گرما به صورتم دمیده شد. مادرم است و همیشه خانه را گرم نگه می‌دارد. بابا هم پنجره‌ها را باز می‌کند و مینالت که مادرم با این کارش پدر همه ما را درآورده است. بابا همیشه میگوید هزینش بیشتر از تولید ناخالص داخلی کشور کوچکی آفریقایی است. توی عزیزم؟ آره. به زور جایی در لباسی که پر از لباس پیدا کردم و کتم را کردم. کردم. بتونید؟ لو یا ترینا؟ لو. نگاهی به اتاق نشیمن انداختم. بابا روی کاناپه نشسته بود. سرش پایین و دستش لای ها بود طوری که انگار بالشتک ها دستش را تا ته بلیدند توماس خواهرزاده پنج سالم روی پاهایش نشسته و با اشتیاق به عذل زده بود بابا صورتش را به طرف من برگرداند چهره‌اش از تقلایی که کرده بود سیاه بود سر در نمیارم چرا این قتای کوفتی لگو رو بعد این‌قدر کوچولو بسازن مامیکو آاقی بالا، بههای بزرگتر بهتر نیست؟ سرم را بالا گرفتم. صدای همیشگی فشش اتو به گوشم رسید. مادرم جسی کلارک هرگز آرام نمینشست و همیشه سرگرم کار بود چقدرم به آن میبالید. به شوخی می گفتیم موقعی که ما همه سر میز غذا نشسته ایم و داریم کباب میخوریم او بالای نردبان بیرون ایستاده و پنجره رنگ می زند. و گاهی هم مکس می کند و برای ما دستگان داد. بیا کمک کنن این لنتی رو پیدا کن نیم ساعتی که اینجا دارم دنبال اینا می گردم باید برم سر کار کاری؟ آره حتما ساعت پنجانیم شده نگاهی به ساعت کردن نه دقیقا چارانیمه دستش رو از لای بالشتک ها بیرون کشید و از گوشه چشم نگاهی به ساعتش انداخت پرسید چطور اینقدر زود امری خونه؟ همینطوری سری تکان دادم لابت فکر کرد درست متوجه سوالش نشدم. وارد آشبازخانه شدم. بابا بزرگ روی صندلی کنار پنجره آشبازخانه نشسته بود و جدول صدوکو حل میکرد مسئول بهداشت نگفت برای تمرکزش خوب است به خصوص بعد از آنکه سکتگی مغزی کرد حدس زدن تنها کسی هستم که متوجه شدهام های جدول را با هر عددی که به ذهنش میرسد پر میکند سلام با, با بزرگ سرش را بالا گرفت و لبخند زد چایی میخوری سرش را به علامت نفی تکان داد دهانش اندکی باز شد نوشیدنی خنک چطور با تکان سر موافقت کرد در یخچل را باز کردم. ام، آب سیب نداریم. آب میخوای؟ یادم آمد که آب سیب زیادی گران است. با تکان سر تصدیق کرد. وقتی لیوان آب را دستش می‌دادم، چیزی زیر لب زمزمه کرد. لابدش تشکر میکرد. مادرم وارد آشپزخانه شد. سبد بزرگ لباسهایی شسته و تا شده دستش بود. یک جفت جوراب را بالا گرفت و گفت مال توه؟ فکر کنم مال ترینا باشه آه آره فکر کنم تو بدرنگ شده فکر کنم بولوز شلوار راحتی هر بابا رنگ داده زود برگشتی؟ میخوای بری جایی؟ لیوانی را زیر شیر آب گرفتم و پر کردم بعد سر کشیدم پاتریک قرار بیاد اینجا؟ زنگ زده بود گوشی تلفن همرا خاموش بود؟ آره گفت که تلاش میکنه برای تعطیلات جایی برای شما رزرو کنه پدرت میگه توی برنامه تلویزیون چیزی در این مورد دیده دوستسر کجا برید ایپسوس کالیپسوس؟ اسکیاتوس آر آره آره منظورم همین بود حواستتون به انتخاب هتل باشه از اینترنت کمک بگیرید پاتریکو و بابا توی اخبار ظهر چیزایی دیدن ظاهرا دارن ساخت و ساز می کنن. لابد با نصف بودجه و کلی زد و بند. تا نری متوجه نمیشی برنارد، چایی می خوری؟ لونه واست ورد کتری را روشن کرد. بعد نگاهی به من انداخت. تازه متوجه شد که من ساکتم و چیزی نمی گویم. عزیزم خوبی؟ بعد جوری رنگت پریده. دستش را جلو آورد و روی پیشنی هم گذاشت. انگار نه انگار 26 سال داشتم. گمون نکنم بریم مسافرت. دست مادرم از حرکت بازی داد. از همون بچگی من چشمانش اشعه ایکس داشت و قادر بود تا هر چیزی را ببیند. تو پد مشکل داری؟ ماما من... قصد دخالت ندارم. ولی شما مدت هاست که با هم دوست هستی. طبیعی گاهی مشکلی پیش بیاد، منظورم اینه که من و پدرت از کار بیکار شدم ساکت شدم اما کلمات همچنان در هوا معلق بودند بعد از برقراری سکوت هم تند و تیزی خود را حفظ کرده بودند چی گفتی؟ فرنک میخواد کافر رو ببنده از فردا دستم را جلو بردم فاکت نمدار را که در تمام طول راه خانه در دست داشتن دراز کردم همه ی آن 180 قدم فاصله بین ایستگاه اتوبوس تا خانه وقوق سماهو داده روزم مثل همیشه شروع شده بود. هر آدمی که می شناختم از صبح دوشم به بعدش میآمد ولی من چندان اهمیتی نمیدادم. دادم. دوست داشتم صبح زود به کافه با تردبان بروم، کتری بزرگ مخصوص چای را در آن گوشه روشن کنم، جعبه های شیر و نان را از حیط خلوت بیاورم و همینطور که آماده شروع کار می با فرانک گپ بزنم. از هوای دم کرده کافه که بوی ژامبون میداد خوشم می در کافه هم مرتب باز و بسته میشد و جریان لطیفی از هوای سرد به داخل می فزید. صدای حرف می و بعد هم سکوت برقرار می شد. رادیوی فرانک تصاویری از گوشهی برای خودش میخواند. کافه شیکی نبود. دیوارهایش را مناظر قلعهی روی تپه پوشانده بود. میسا هنوز روی فرمیکا داشتند. از وقتی من شروع به کار کردم، فهرست خوردنی ها غیر از کیکی شکلاتی که اضافه شد هیچ تغییری نکرده بود. اما بیش از همه مشتری ها را دوست داشتم که وانجلوی لولکش که هر صبح و سر به سر فرانک میگذاشتند که گوشت را از کجا آورده است. خانم قاصدک را خیلی دوست داشتم. این اسم را به خاطر خرمن موهایی سفیدش گذاشته بودیم. از دوشنبه تا پنجشنبه می آمد و تخم مرغ و سیب زمینی سرخ کرده می خورد. می نشست و روزنامههای رایگان می‌خواند و دو فنجان چای نوشید. همیشه سعی می کردم سر حرف را با او باز کنم. حدس می‌زدن تنها مکالمه است که پیرزن در طول روز دارد. گردشگران وقتی به قلعه می‌آمدند یا برمیگشتند سر راهشان به کافه می‌آمدند. بچه مدرسهی های و بعد از سعتیدی مدرسه سری می‌زدند. از ادارههای محل هم مشتری های دائمی داشتیم و من همه و همه را دوست داشتم. نینا و شریک که بودند میزان کالری تمام اقلام کافر دقیق می دانستند. حتی از دست مشتری های بدقلقی مثل زن موقرمزی که فروشگاه اسباب بازی فروشی را می گردند و دست کم هفته یک بار سر باقی پولش جر و بحث را می ناراحت نمی شدم چه چیزها که سران میزها ندیدم دوستیهایی که شروع شدند یا خاتمه یافتند زن و شوهرهای سابقی که بچه به تحویل هم می والدینی که حوصله آشپزی نداشتند و با اینکه احساس گناه می نفس راحت هم می کشیدند. شادی درونی مستمدی بگیرها وقتی برای صبحانه های سرخ کردنی می خوردند. همه جور آدم میآمد و بیشترشان هم یکی دو کلام با من حرف میزدند، شوخی میکردند، یا سفارشاتی در مورد چای داغ میدادند. بابا همیشه میگفت هرگز نمیتواند حدس بزند حرف بعدی من چه خواهد بود. اما این چیزها اصلا در کافه مطرح نبود، چون احتمال هر حرفی وجود داشت. فرنگی صاحب کافه از من راضی بود. خودش ذاتا آدم آرامی بود. میگفت حضور من در کافه موجب سرزندگی است و شور و بخشد. یک جورهایی انگار داشتم در مشروب فروشی کار میکردم. فقط خبری از دعوای های مست نبود. تا اینکه آن روز بعد از نهار، تا اوج شلوغی را پشت سر گذاشته بودیم و کافه داشت خلوت میشد که فرانکی از پشت اجاق رومیزی بیرون آمد. همینطور که دستش را با پیشبند پاک میکرد، جلو رفت. و علامت تعطیل را برگرداند و رو به خیابان قرار داد. آب دستمال را در دستش میچرخاند. هرگز او را اینطور معذب ندیده بودم. کنجکاف بودم. با خودم گفتم شاید کسی شکایتی از من کرده است. بعد به من اشاره کرد که بنشینم. گفت لویزا شرمنده ولی من باید برگردم استرالیا. حال پدرم اصلا خوب نیست. ظاهرا هم بوفه خود قلعه بزودی باز میشه. رو به دیوار زدن. شکه شدم. فکر کردم دهانم از تعجب باز مند. بعد فلانکی پاکت رو دستم داد و پیش از اینکه سوالم رو بپرسم جوابش رو گرفتم. هرچند قرارداد رسمی بین ما نبود ولی حقوق سه ماه رو توی پاکت گذاشتم. کافی از فردا میشه بابا منفجر شد سه ماه؟ مامان فنجان چای شیرین دستم داد بابا ادامه داد خب باید میداد غیر از اینکه لوشی اون کافه مثل خر کار کرد. مامان چشقوری به بابا رفت و با تکان سر به توماس اشاره کرد. والدینم هر روز بعد از استاتلیه مدرسه از توماس مراقبت می‌کردند تا بعد که ترینا از سر کار گشت. الان چه می خواد بکنه؟ فرانک باید زودتر گفت. نه اینکه صبر کنه و یه روز قبل خبر لعنتی رو بده. خب یه کار دیگه پیدا میکنه؟ جوسی کار کجا بود؟ خودت بهتر از من میدونی الان بد جوری رکود اقتصادیه مامان لحظه چشمانش رو بست انگار می قبل از حرف زدن خودش رو آرام کند دختر زرنگیه کاری برای خودش و پا می کنه کاری خوبی هم داره غیر از اینه فرنگ معرفی نامه خوبی هم میده. او فوقلا است. لویزا کلارک خیلی خوب به نون تست کره میزنه، خیلی هم با احتیاط به قوری قدیمی دست میزنه <تصفيق> بابا، ممنون برای اعتماد به نفسی که میدی حالا یه چیزی گفتم دلیل واقعی نگرانی بابا را میدانستم. آنها روی درآمد من حساب میکردند ترینا تقریبا مجانی در گلفورشی کار میکرد مامان باید از پدربزرگ بزرگ مراقبت می کرد و شرکت کار کردن نداشت. حقوق بازنشستگی پدر کم کم بود. بابا همیشه نگران کارش در کارخانه ی مبلسازی بود. رئیس کارخانه چند ماهی بود زمزمه درباره تعدیل نیرو می کرد. در خانه نجواهایی هایی می شنیدم و صحبت از بدهی و تغییر کارت اعتباری بود. دو سال قبل ای که بیمه هم نداشت در بابا را کرد. و این اتفاق آنقدر بد بود که خیلی چیزها عوض شد و در نهایت والدینم اینم مشکلات مالی شدند. برای هزنای خانه روی دستمزد ناچیز من حساب می کردند. آنقدر بود که به خانواده کمک کند ایام بگذرد. حالا ویل کنید انقدر جلو نرید. فردا می بره اداره کاریابی و ببینه کاری هست یا نه؟ خودش انقدر پول داری که مدتی رو سر کنه طوری حرف می که انگار من حضور ندارم دختر زرنگی که هست عزیزم مگه نه میتونی بری دوره ماشین نویسی ببینی برد انبال کار دفتری. نشستم و به پدر و مادرم گوش دادم که داشتن جر و بحث میکردن که با توجه به توانایی های محدودم از احدهی چه کارهایی برمیآیم آیم کار در کارخانه چرخکار کار خیاتی درست کردن ساندویچ. آن روز بعد از ظهر برای اولین بار در عمرم دلم میخواست گریه کنم. توماس با چشمان بوت زده به من نگاه میکرد. بدون اینکه حرفی بزند نصف بیسکویت دهن را به من دد. منونم توماس. بعد در سکوت بیسکویت را در دهانم گذاشتم. همانطور که خودم حد زده بودم پاتریک در باشگاه ورزشی بود از دوشنبه تا پنجشنبه مثل جدول زمانبندی ایستگاه اتوبوس به طور منظم به باشگاه میرفت همیشه یا توی سالن بدنسازی بود یا در میدانی که با افکن روشن شده بود میدوید وقتی نزدیکم آمد بریده بریده گفت بیا با من بدو نفسهایش اندکی با بخار همراه بود. چهار دور دیگه باید بزنم. لحظه تردید به خرج دادم. بعد کنارش شروع به دویدن کردم. تنها راهی بود که می کمی با او حرف بزنم. کفش های ورزشی صورتی با بند فیروزه‌ای رنگ به داشتم فقط همین کفش هم مناسب به دویدن بود. تمام روز را توی خانه بودم. نهایت سعی خودم را کرده بودم مفید واقع شوم. شاید فقط یک ساعت توی دست و پای مادرم نبودم. مادرم و پدر بزرگ خودشان را داشتند و حضور من برایشان مزاحمت ایجاد می کرد. بابا که تمام آن ماه را شبکاری کرده بود خواب بود و نباید کسی مزاحمش می شد. اتاقم را مرتب کردم، بعد نشستم و تلویزیون تماشا کردم. صدایش را هم کم کرده بودم. هر از گاهی که یادم می چرا وسط روز کاری در خانه هستم درد خفیفی در قفسه استینه احساس می کردم فکر نمی کردم این طرفا پیدا توی خونه حسنم رفته بود فکرم بیان پیشت شاید با هم کاری بکنم و جایی بریم یک به من نگاه کرد لایه از عرق روی صورتش بود عزیزم بهتره هر زودتر یه کاری برای خودت دست و پا کنی. فقط 24 ساعت شده که کار نمی‌کنم. یعنی انقدر بیچاره آویزونم همین یه روزم ولی فقط نیمه پر لیوانو می‌بینی. خودت خوب میدونستی که نمیتونی تا ابد اونجا کار کنی. باید رشد کنی. دو سال پیش پاتریک کارآفرین جوان سال در فولد لقب گرفته بود و هنوز از حال و هوای رافرین آن بیرون نیامده بود. از آن موقع یک شریک کاری پیدا کرد به نام جینجر پیت و یک منطقه‌ای 65 کیلومتری را پوشش میداد و مسئول آموزش شخصی افراد بود. دو ون اتاقدار هم به صورت قسطی گرفته بودند. باتریک نگاهی به ساعتش کرد. می‌خواست ببیند یک دور چه قتول کشیده است. گفت: لو نگران نباش گاهی وقتا از کار بیکار شدن زندگی افراد رو دگرگون میکنه حالا چه برنامه ای داری؟ میتونی بری کالج مطمئنم به افرادی مثل تو کمک هزینه میدن افرادی مثل من؟ افرادی که دنبال فرصت تازن میخوای چی کارشی؟ میتونی آرشگرشی؟ به اندازه کافی خوشگلم هستی؟ همینطور که میدویدیم با آرنج آرام به پهلویم زد انتظار داشت برای این تعریفش از او تشکر میکردم تا که میدونی هر روز از چه چیزایی برای صورتم استفاده میکنم صابون آب و همین چیزای معمولی ظاهراً پاتریک داشت گفتی می شد. آهسته کردم و پشت سرش قرار گرفتم از دویدن بدم می‌آمد. از او هم بدم می که تند میدوید آهسته نمیکرد. ببین فروشنده منشی بونگا معاملات ملکی نمیدونم. دونم کاری هست که دوست داشته باشی انجام بدی ولی نبود من کار در کافه را دوست داشتم وقتی می دیدم تمام چیزهای مربوط به کافه با ترتباند را میدانم لذت می بردم از شنیدن داستان زندگی افرادی که به کافه می خوشم می آمد. آنجا احساس راحتی می کردم. عزیزم، نمیشه که بی این طرف و اون طرف بپرکی. خودتو نباز. بهترین کارافرین ها از صفر شروع کردن. جفری آرچر، ریچارد برنسون. ضربه ای به دستم زد تا حواسم کاملا به او باشه. باید میدونم جفریارچه؟کی که صابونه آماده میکرده و بعد کارش از دست داده باشه. از نفس افتاده بودم لباس زیرم راحت نبود قدم هایم رایسته کردم و دستم را پایین روی پا انداختم. پاتریک چرخی زد و عقب عقب حرکت کرد صدایش در هوای سرد و بدون باد پیچید من فقط نظر دادم. بعدا در موردش فکر کن لباس مرتبی بپوش و به اداره کاریابی برو اگرم خواستی میتونم یادت بدم با من کار کنی خودت میدونی که توش پوله نگران مسافرت هم نباش از اینش من میدم دبخندی به او زدم برایم بوس فرستاد و صدایش در استادیوم خالی تنینن هر وقت خوب شد میتونی به این پس بدی اولین درخواستم را به اداره کاریابی دادم و پنج دقیقه مصاحبه شدم گروهی که با آنها نشستم حدود 20 نفر زن و مرد جور با جور بودن نصف آنها قیافه حیرت زده به خود گرفته بودند. حدسیم زدم خودم هم همین طور باشم. چهرهی افرادی که بار اولشان نبود سر از آنجا درآورده بودند بی و بی تفاوت بود. لباس مرتبی تنم بود و به گفته پدرم مثل آدم لباس بشیده بودم. نتیجه تلاش هایم این شد که رضایت بدهم و فرم تقاضای کار شبانه در کارخانه کنسرو جوجه را پر کنم. تا هفته ها کابوس میدیدم. و دو روز هم دوره آموزشی برای شغل مشاوره سوخت خانگی ببینم. اما فوری فهمیدم که دوره آموزشی در واقع برای این است که به سالمندان خنگ تعلیم بدهم که مایحتاجشان را از تأمین کنندگان سوخت تهیه کنند. به ساید مشاور مدیر اداره کاریابی گفتم که این کار از من بر نمی آید. اما به اصرار او فهرستی از کارهایی که باید انجام می تهیه کردم. خوشبختانه سایت در نهایت رضایت داد که ما دنبال کار دیگری بگردیم. با اینکه فقط یکی از ما دو نفر دنبال کار میگشت و دیگری شغلش رو داشت، همیشه از لفظ ما استفاده میکرد. دو هفته در رستوران زنجیره ی فست فود کار کردم. مشکلی با ساعت کاری نداشتم. حتی توانستم با این مسئله که یونیفرم با موهایم الکتریسیته ساکن ایجاد میکند کنار بیایم. اما دیدم غیر ممکن است همیشه بتوانم جملاتی مثل امروز چه کمکی می توانم به شما بکنم و سیب زمینی سرخ کرده بزرگ بزرگم میخواهید به زبان آورم و طبق انتظارشان رفتار کنم. کارم را وقتی از دست دادم که یکی از دخترهای مسئول دونات دید که دارم با دختر 4 سر اسباب بازی رایگان جر و بحث می کنم. چه میتوانم بگویم؟ دختر چهارساله باهوشی با بود. فکر نمی کردم زیبای خفته ها هم باهوش باشند حالا برای چهارمین بار داشتم با ساید گفتگو می کردم ساید در اینترنت برایم دنبال فرصت های شغلی می گشت. آدم پرشور و مشتاقی بود که واقعا می توانست برای هر کسی کار پیدا کند حتی افرادی که ظاهرا کاری از دستشان بر نمی آمد. با این همه حالا حتی حوصله او هم سر رفته بود خب هیچ به صنعت سرگرمی فکر کردی. چطور؟ یعنی بازیگر پانتومیم یا خاننده اپرا بشم؟ نه اینا ولی یه برنامه رقص میله افتتام میشه در واقع چند تا. یکی از ابروهایم را بالا دادم و گفتم لطفاً بگو داری شوخی میکنی سی ساعت تو هفته و بر مبنای خودش تقالی فکر کنم خوبی هم داشته باشه گفته بودی که خوش برخورد هستی ظاهرانم از لباسای مخصوص نمایش خوشت میاد به شلوارم که سبز براق بر بود نگاهی کردم خودم فکر میکردم این شلوار روحیم را عوض می کند. سر میز صبحانه توماس همش آهنگ پریه دریایی را برایم زمزمه می کرد سایید تق, تق به صفحه کلیدش زد و چیزی نوشت نظرت در مورد نظرات خط گفتگوی بزرگسالان چیه؟ به حضور زدم شانه بالا انداخت خودت گفتی که حرف زدم با مردم و دوست داری؟ نه و نه به شغل برهن کاری دوستم ندارم ما یا اپراتور دوربین اینترنتی شم سایه دست بردار حتما کاری هست که میتونم بدون سکته دادن پدرم انجام بدم حرفم او را گیج کرد فرصت شغلی با ساعت کاری پیدا نمی کنم. چیدن قفص ها بعد از تعطیلی فروشگاه هم نیست؟ افتا آمد زیادی به اداره کاریابی داشتم و یاد گرفته بودم به زبان آنها حرف بزنم با لحن پوزش دلبانهی گفت ادهی برای این کار سبت نام کردم بیشتر پدر و مادرها تمایل دارند چون با ساعت کاری ها جور در میاد دوباره با صفحه نمایش مشغول شد خب حالا فقط کار کمک بهیاری باقی مونده یعنی شه با سن پیرزن و پیر مردا. لویزا متاسفم برای هیچ کار دیگه ای واجد شرایط نیستی اگه بری دوره ای ببینی خوشحال میشم بهت کمک کنم دوره زیادی تو مرکز آموزش بزرگ سالان هست که میتونی بگذارونی ساید در این مورد صحبت کردی. اگه بخوام این کار بکنم حقوق بیکاری ما از دست میدم درسته؟ بله اگه برای کار ثبت نام نکرده باشی. لحظاتی هر دو ساکت نشستیم. به در ورودی نگاه کردم. دو نگهبان قوی آنجا ایستاده بودند. کنجکاو بودم بدانم آیا شغلشان را از طریق اداره کاریابی پیدا کرده‌اند. سایت. من حوصله پیرا رو ندارم. پدربزرگم از وقتی سکتی کرده پیش ما زندگی میکنه نمیتونم باهاش کنار بیام. آها. و این حساب تجربی تو زمینه یه پرستری داری نه خیلی مادرم همه کاراش انجام میده مادرت دنبال کار نیست؟ <تصفح> چه خنده دار <تصفح> خنده دار نیست بعد من بمونم تا از پدر مراقبت را کنم؟ <تصفح> نه متشکرم. گرچه پدر بزرگ خودش هم مثل من دوست نداره هیچ کاری توی هیچ کافهای نداری؟ لویزا گمون نکنم دیگه کافه باشه که بتونی استخدام بشی میشه مررگ کنتاکی هم امتحان کرد شاید اونجا بهتر دمون بیاری نه خودم اینطور فکر نمیکنم خب با این حساب مجبوریم بریم راه دورتر خودت میدونی فقط چهار تا اتوبوس به شهر ما رفته آمد داره یادم از گفتی مجبور میشم با اتوبوس گردشگری اون بیام به اسکایش زنگ زدم گفتن تا ساعت پنج هست بیشتر کار نمیکنه. تازه بیلیتش از اتوبوس معمولی گرون تره. ساید به پشت صندلی تکیه داد. لویزا، حالا که تو این مرحله هستیم باید بگم اگه میخوای اسم دست فهرست حقوق بیکاری خط نخوره باید... بیدونم. باید نشون بدم که همچنان دنبال کار می چطور می به این مرد بفهمانم که هر طور شده باید کار پیدا کنم؟ چه میدانست که چقدر دلم برای کار قبلیم تنگ شده است؟ بیکاری یک مفهوم بود چیزی که در اخبار فقط در رابطه با کارخانه های اتومبیل سازی یا کشتی سازی مطرح میشد هرگز فکرش را نمیکردم که از دست دادن کار مثل از دست دادن دست و پا باشد چیزی که بدون خاص خودت و برای همیشه از دست می رود. هرگز به پول آینده فکر نکرده بودم و باهم ای از چیزی نداشتم فکر نمیکردم از دست دادن شغل در آدم، حسی از بیکفایتی و تا حدودی بیهودگی ایجاد کند. صبح آدم خودش از خواب بیدار شود، خیلی سختتر از این است که ناگهان با صدای زنگ ساعت شماته از خواب بپرد. دل آدم برای همکارانش تنگ می شود، اصلا هم مهم نیست وچه اشتراک کمی با آنها داری. حتی می بینی که توی خیابان دنبال چهرای آشنا می گردی. اولین باری که خانم خاصه را دیدم که بی هدف از مقابل فروشگاه میگذرد و درست عین خودم سرگردان است دوست داشتم جلو بروم و بقلش کنم صدای ساید مرا از عالم خیال بیرون آورد آها این یکی شاید خوب باشه سعی کردم از صفحه نمایش ببینم همین الان اضافه شد پر اسرار گفته بودم به درد این کار نمیخورم. برای سالمن نمیخوان. یه کار شخصیه. کار تو خونه یه کسی. فقط هم سه کیلومتر با خونتون فاصله داره. پرستاری و مصاحبت با یه مرد توانخواه. رانندگی میکنی؟ آره. لابد باید با سنشم بشورم. نه. لازم نیست با سنشو بشوری. با دقت میخوند. هر چهار اندامش فلج. به کسی نیاز داره که در طول ساعات کاری به اون غذا بده و کمکش کنه. معمولاً هم برای اینجور شغلا وقتی هم میخوان بیرون برم باید حاضر باشی و کمک کنی. وای چه پول خوبی هم میدن. خیلی بیشتر از حد اقل حقوق. لابوچان باید با سنش رو کنم. زنگ میزنم و میپرسم. اگه همه چیز خوب بود خودت تنهایی میری مصاحبه؟ با لحن سوالی گفته بود. ولی ما هر دو جواب را می دنستیم. آه عمیقی کشیدم کیفم را برداشتم و آماده بازگشت به خانه شدم پدر گفت یا ای سانسی بتونی تصورش انگار مجازات نشستن روی صندلی چرختار کافی نبود که باید هم صحبتی یه هم تحمل کنه <تصفح> مادرم با لحن شماطت‌آمیزی گفت برنارد پدر بزرگ پشت سرم داشت توی لیوان چایش <تصفح> می‌خند